ای غائب از نظر به خدا می سپارمت جانم به سوختی و به دل دوست دارمت تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست دامن به دارمت مهراب عبرویت به نوما تا سهرگهی دست دعا بر و در گردن آرمت گر بایدم شدن سوی حاروت بابلی صدگونه جادویی بکنم تا بی آرمت. خواهم که پیش می ای بی وفا تبیب بیمار باز که در انتظار آرمت. جوی آب بستم از دیده بر کنار بر بوی تخم مه که در دل بکارمت خونم بریخت و از غم عشقم خلاص داد منت پذیر غمزه خنجر گذارمت می گریم و مرادم از این سیل عشق بار تخم محبت است که در دل بکارمت بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل در پای دم به دم گوهر از دیده بارمت حافظ شراب و شافد و رندی نوز اتوست فل جمله می کنی و فرو می گذارمت